رخداد، نادرستی نظری های نژادی، هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی، آنام با, با یاد یک آن هستی بارز سلام آمده به احترام خدمت گرامی. همراهان صدای امید برنامه برابری. قسمت سیوم ایکم این برنامه رو در خدمت شما هستیم. تا قسمت سیوم ما به که از قسمت اول شروع کرده بودیم از بحث خلقت و همچنین نقد نظریه داروین و مسئله تکامل رسیدیم به انسانهای اولیه و قصد داریم وارد شرق آفریقا بشیم. انسان‌های اولیه‌ای که در واقع اجداد ما انسان‌ها بودند و شروع مهاجرت اونها از این قسمت 3ی ای بتونیم تبیین مسئله رو به صورت علمی در خدمت شنوندگان گرامی باشیم همانند سی قسمت گذشته در خدمت جناب آقای ایران مهری گرامی میهمان برنامه هستیم خیلی خوشحالیم قرار شد که در این قسمت جناب آقای ایران مهری گرامی از خصوصیات نخستی ها و عوامل ژنتیکی که باعث در واقع تکامل این نوع از موجودات شد صحبت بکنن تا اینکه برسیم بحث خودمون رو ادامه بدیم جناب اینانمه گرامیزمدهسلاملی که با شندگان از این بفرمایید در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. درود بر شما و شنوندگان گرامی همچنان بحث رو دنبال میکنیم همینطور که آقای دکتر محبی فرمودند بحث رو درباره خصوصیات نخواستی ها و مشخصات ژنتیکی اونها که درس اینا بودندن که، انسان نماها رو پدید آوردن و در شرق آفریقا از جنوب آفریقا به شرق آفریقا اومدن از آفریقا اومدن بیرون و انسانهای خیرتمند امروزی از تبار همین موجودات هستند. آی دکتر شما در قسمت گمان کنم پنشش قسمت گذاشته حدود 24 تا 30 بله. طالب خیلی مهم و علمی رو فرمودین یک اشارهی به کورومانیون که فرمودین و یافته که سال 2014 منتشر شده بود لا این آی دکتر یک نظری رو گفتن که موجوده بین دانشمند ها دهن به دهن میشه که شاید شاید کورومانیون ها همون آدمای سازنده و پیداوردنده آتلانتیس باشن که حالا در اتلانتیس شنوندگار خب خوندن شنیدن اون نظری موجود و قالب اینه که آتلانتیس یک جای فرو رفته در اویانوس اطلس در دروازه های اطلس تقریبا میشه قرب جبل و تارق و سواحل غربی آفریقا البته الان با هم نگاه کنیم تو فلات قاره غرب آفریقا که زیر آبه یک سازه هایی دیده میشه بله دیگه باقا هم دیده میشه اما اینجا من موضوع رو زحمی نمی کنم اینقدر شواهده موجود اما بررسی نشده هست که نشون میده واقعا اطلانتیس وجود داشته به زیر آب رفته نه اونطوری که میگن با انفجار و زمین لرزه و اینا به شیوه دیگی دانشگاه بیرمنگام سال 2009 خودش رو این کار کرده البته نه با نام اطلانتیس به یک نام دیگی و نشانه هایی که حالا جالبه این نشانه ها اینقدر در اسطوره های ایجی ای، اساطیر یونان موجوده چون میدونی که افلاطون اینو از قول یک مصری مسرینو گفته, گفته بود گفته اینطوری بوده و هست که ما در ای که در پس از این برنامه برابریم میخوایم اونجا حالا بعد دکتر موبی کامل توضیح میدن که اون چطوری اونجا دنبال خواهیم کرد ما این موضوع رو کامل باز میکنیم چون این یک مطلب خیلی مهمیه مربوط به همین بحث ما میشه نسبت به گسترش انسانها در آرهای مختلف میشه که اصلا آتلانتیس موزوش چیه این یک مطلب بود یه مطلب دیگه بود که ما میخوایم شرق آفریقا رو بررسی کنیم دیگه نمیرسیم خیلی از نظر تخصصی جنتیکی توضیح بدیم که در واقع این گونه این انسان نماها در شرق آفریقا پدید نیومدن اینها در جنوب آفریقا پدید اومدن بهمت. با یک نشانگر ویژه که ال1 نامیده میشه سپس به سمت شمال حرکت کردن که روبروشون تقریبا میشه همون شرق آفریقا دو شاخه شدن یه شاخه در قرب آفریقا مثلا کامرون این و امروزی اون حدودا قناه اینا ساکن شدن اونا به سبب حامل نشانگر ال 2 شدن جهش پیدا کرد به صورت یه ویژگی خواست که انسانهای آفریقایی همین ها هستن اونهایی که نشانگرهای L3 و از اون مهمتر ام رو به دست آوردن با جهش. حالا این هرکت از جنوب به شمال آفریقا خیلی طول کشیده چند ست هزار, اون... سال, چند ست هزار سال طول کشیده اینا روند تکاملی رو تقیی کردن و جالبه که اون نشانگر یا هاپلو گروپ ام بود که از شرق آفریقا خارج شد و اومد تبدیل در کنار خودش هاپلو گروپ این رو درست کرد و جالبه و اینها بودند که بعد از خروج به تمام جهان گسترش, گسترش بیده کرد یه خصوصیات رو دکتر مایبی تو چند جلسه گذشته گفتن مثلا اینی که نیاکان این انسان نماها مو بیشتر در سطح بدنشون بوده مالا. انسان هرچی به ش... ش... ش... شکل امروزی دارم مو کمتر شد به نظر میاد که زیشناسان میگن که نداشتن حالا جالبه نداشتن مو در سطح بدن در شرایط خاصی یک مزیت بله. یعنی جانورانی که لابلای موها مثلا ببینید که یکی از خصوصیه شامپانزه اینه که همدیگر رو میجورن یعنی لای موای بله. همدیگر رو و اون کنه ها و ساسا و اینا رو میگیرن یک چیز غریزیه بینشون نداشتن مو مزیت و امکان حضور در جای مختلف و پدید میاره در مثلا نقاط مرتوب در آب اینا خیلی مزیت نداشتن مو اما تو یه مشکلی داره اینی که بعد در برابر سرما آسیب پذیر میشه همزمان وقتی که مغز در این انسان نماها در دوره تکاملی داشت می کرد و حجمش بیشتر میشد این کمک کرد که اینا بتونن از پوشش های غیر طبیعی برای خودشون استفاده کنن همزمان داشتن مو با رشد مغز که اینا میتونستن خودشون رو در برابر سرما حفاظت کنن اون جنهای بیمویی رو به نسلهای بد طی چند هزار سال منتقل کرد درباره پدر و مادر اولیه همای دکتر توضیح دادن که یک پدر مشخص در حدود مثلا 120 هزار سال یک مادر مشخص 140 هزار سال پیش دارن خب اینو ما برای شهروندگان یک توضیح کتاب بدیم که یک نفر منظور نیست یک گروه ژنتیکی ژنتیکی بله پدر یک گروه ژنتیکی مادر رفته توی منطقه محدود اما یک تعدادی یک شماری که حاوی این ژن ها اینا پدر اولیه بودن و یک تعدادی که حاوی اون ژن های مادری بودن خیلی جناشون به هم بوده یعنی منظور اینه که بقیه گروه های جنی منقرض شدن و اینها بودن که تونستن نسل آینده رو بسازن این هم که میگن چی شد مثلا با خودشون فکر کردن حالا ما مغزمون بزرگ بشه انسان ها انسان نما ها نه بزرگ شدن مغز یک مذیعته همونطور که توی تک... نظریه تکامل گفتیم جهش باعث حالات مختلف میشه بزرگ شدن مغز کوچک شدن مغز مثلا جمجمه اینجوری بشه اونجوری میشه بزرگ شدن مغز یک مزیت این کارایی رو در بدن بیشتر میکنه یعنی مزیت ایجاد میکنه ولی حفظ بقا خب معلومه در تنازع بقا انتخاب طبیعی اینطوری میشه که ژن هایی که مغز بزرگتر رو به وجود آوردن در نسل های بعدی پیدا میشن علاوه این کم کم مغز هم رشد کرد حالا با اجازه من تو وقت که تو این بخش سی داریم من یک خصوصیات خیلی اجمالی از نخستی ها, نخستی ها میگم. ما گفتیم راسته نخستیها یه راسته ای بودن که در پایان این به اسطلا خانوادهی که منصوبه که اینها انسان نماها هم از این خانواده هستن از این راسته پدید آمدن پریماته ها اینه ترین پستانداران محسوب میشن. نیم کله مغز توسعه یافته دارن، چشماشون جلوی سره و کنار هم واقع شده. انگشت 6 در مقابل 4 انگشت دیگه شون دارن. هیچ راسته دیگه اینو نداره. بنابراین گرفتن امکان گرفتن اجسام در اونا فراهم میشه. فراهم. یک ویژگی یشونه مینه که فقط همین راسته ای که دو تا پستان در قسمت بالای سینه دارن. شما هر جانوری رو که دیدین دو تا پستان در قسمت بالای سینه داره به احتمال بسیار قوی از این راسته است. گوریل، شامپانزه لیمور همون چیزی که میگن مانکه یا میمون انسان همه متعلق به این راست تکامل انسان چیزی جدا از تکامل تاریخشی تکامل نخستیسانان یا پستانداران شبیه انسان نیست به ویژه سرده انسان از جمله پیدایش انسان ها به عنوان گونه مجزا از انسانسایان یا کپیهای بزرگ خدمتون بگم که احتمال میدن دیر این شناسان که نخستیسانان در اواخر دوره کرتاسه یعنی 80 میلیون 85 میلیون سال پیش تکاملشون آغاز شده در زیر دست و پای دایناسورها نخستی نخستی‌ها نخستی‌ها بله یعنی زمانی که پستانداران به شدت تحت فشار دایناسورها بودند پدید بله. اومده بودند اما پستانداران و نخستی‌سانان هم که قاطی پستانداران بودند امکان رشد و تکامل نداشتن چون جمعیتشون به شدت شکار می‌شد و محدود می‌شد و ژنها انتقال پیدا نمی‌کرد اون اتفاق 20 میلیون سال بعد از این قضیه افتاده وش از 4 میلیون سال پیش در طی چند میلیون سال حالا عوامل متعددی دایناسورها دا کم کم رو به نابودی داشتن و اینجا بود که بهش میگن انفجار پستانداران که نخستی سالان هم یک راسته از همین پستاندارن این دوران رو تقریبا دوران پالئوسن می دونن همزمان با اون 55 میلیون سال پیش خانواده انسان سایان یا کپی های بزرگ 15 تا 20 میلیون سال پیش همین راسته که داشت میومد جلو و تکامل پیدا میکرد، از خانواده بزرگ گیبون ها جدا شد یعنی ما از 20 میلیون سال پیش دیگه کپی های بزرگ یا انسان سایان رو با گیبون ها توی یک مسیر تکاملی نمیبینیم تکامل جدا خودشون رو تکامل جدا شد اینا جدا شد حدود چارده میلیون سال پیش ارانگوتان ها، از خانواده انسان سایان جدا شدند یعنی اونا باز مسیر تکامل خودشونو بته کردن انسان سایان مسیر خودش راه رفتن روی دو پا ابتدایی ترین انطباق این دودمان انسان تباران بود این اولی فرق. شد یعنی خیلی ها از جا... یعنی چند تا جانب گونه جانور دیگه هم تو این هستن حالا بعد میگیم اینا کله حساب انسان شنا ها جان و نخستین انسان تبارانی که روی دوپارها میرفتن رو به اصطلاح ساحل مردم نامیدن در میان این ساحل مردم ها ردی کپی یک نام علمی کاملا روی دوپارها میرفته گوورییل ها بعد این بعد این ساحل مردم ها که حالا پس اینجا میفهمیم که گوریلا و هم ها و شامپانزه ها قاتی همین ها همین شناسی هم. حساب میشن. حالا در این موقع است که حددون، عدود ده تا دوازه میلیون سال پیش، هشت تا دوازه میلیون سال پیش، اول گوریل ها از این خانواده ساحل مردم ها جدا میشن. و بعد برای آخرین نوبت که شامپانزه ها هم از این دودمان جدا میشن و احتمالاً ساحل مردم آخرین نیای مشترک و ما و آنها بود. یعنی بعد اون دیگه دودمان ما جدا شد و تکامل خودش رو از حدود 8 میلیون سال پیش طی کرد. سنگواره ها هم همینا نشون میده. راهمون جدا شد دیگه. راهمون جدا, از جدا, جدا شد, شد از 8 میلیون سال پیش. بله کاملا جدا شدیم دیگه. اینی که حالا میگم اون بحثا رو ما دیگه تکرار نمیکنیم که میگن انسان از میمون یا میمون از انسان اون اصلا با این حرف دیگه کاملا باطله. بله دقیقاً باطل میشه. این راه رفتن اولی روی دو پا که از سال مردم آغاز شده بود همچنان تکامل پیدا کرد. حالا دودمان ما جدا شده دیگه. حالا اون چیزی که به اصطلاح میگن میگن جنوبی کپی آساها از اینا تکامل پیدا کردن و بعد سرده انسان پدید اومد تا انسان باز هنوز نه انسان امروزیه اون چیزی که بهش میگیم انسان انسان یا انسان نما انسان نما پس ساحل مردم‌ها وقتی که دیگه گوریلا و شامپانزه جدا شدن دودمان انسان‌ها جدا شد جنوبی کپی آساها آس‌ها می‌بینیم باز هم اشاره داره که در جنوبن جنوب واقعاً جنوب بله، جنوبن و بعد ها سرده انسان از اون رو پید اومد. این انسان های امروزی، حالا ما از 8 میلیون سال کم کم داریم میانیم جلو تکامل داره پی میشه. انسان های امروزی از انسان سایانی که میانه دو 3 دهم ده تا دو 4 دهم میلیون سال پیش در آفریقا میزیستن تکامل پیدا کردن. یعنی این دودمان تکاملش رو ادامه داد. نخستین گناه های ثبت شده از سرده انسان، انسان ماهر، و انسان موسوم به گاتنگی هستن که حدود 2 و 3 و میلیون سال پیش تکامل پیدا کردند. انسان ماهر توضیح میدیم اولین گونه ای بوده که از ابزار استفاده کرده. اندازه مغز این انسان ماهر حدودا اندازه مغز شامپانزه بوده. با. چون امروز هم تو مستندها نگاه کنید شامپانزه ها تو جنگل گردوها رو با وسیله تیکه چوب یا سنگ میشکنن. این حجم مغز اجازه این مقدار کار رو انجام میده. نه کمتر نه بیشتر. سپس با پیدایش انسان کاملا دیگه حالا انسان رو دوپا را میرفته اما راست قامت دوپا اما خمیده حالا پیدایش انسان راست قامت شاهدش هستیم که حجم جمجمش به دو برابر انسان ماهر افزایش پیدا کرده بود دو برابر حجم جمجمه مثلا شامپانزه حالا این انسان راست به همراه انسانی موسوم به انسان کارورد نخستین انسان‌هایی بودن که پاشون از آفریقا بیرون گذاشتن یعنی تا قبل اون انسان سایان و انسان نماهایی که در آفریقا بودن همونجا بودن, بودن. یعنی خارج از آفریقا اینا اولین هایی هستن که سنگبارشون در خارج از آفریقا هم پیدا, پیدا شد سپس در 1.8 تا 1.3 میلیون سال پیش در آفریقا آسیا و سپس اروپا پراکنده شدن ببینید اینا هنوز انسان خدمتمند امروزی نیستن نه که مشخص هم. انسانن از جزوه انسان سایان هستن اینا نخستین گونه هایی بودن که آی دکتر از آتش و تونستن از ابزارهای پیچیده استفاده کنند. یعنی ابزار، ابزاری فراتر از اینکه یه سنگ دستت بگیری و یک دانه رو بشکنی بله اینا اولین انسان هایی بودن که این کار کردند. شما من دیگه وارد این نمیشم توضیح دادین که خروج از آف آفریقا دو تا نظریه است یکی تک مبدعی بله. این در آفریقا انسان ها تکامل پیدا کردن و رفتن بیرون درسته یا نه انسان های اولی اون انسان های مثلا راسخامد رفتن بیرون بعد تکامل پیدا کردن تک تک تونستن این تکامل به جهتی بره که انسان امروزی رو پیدی کنه بعد اینا با همدیگه آموزش پیدا کردن همه آزمایش های ژنتیکی و اینا نشون میده که نظری دوم چندان پایه اساسی نداره میدونید هایی که توی اندونزی انجام شد رو انسان را راسخامد با جهش هایی که توی اروپای شرقی انجام شد با جهش هایی که تو فلات ایران انجام شد نمیتونه جهش انجام بشه اسید آمینه از جاش در بیاد دوباره همون اسید آمینه های تو اندونزی رو دی بشه ای بشینه که همون تو اروپای شرقی نشسته همون تو فلات ایران نشسته نمیشه حتی توضیحی که بعدا اینا با هم آموزش پیدا کردن و یکسان شد چیزشون این هم توزیع علمی کافی پشتیبانی نمی‌کنه این موضوع رو بنابراین آغاز همون تکمبدعی نشون میده که آغاز تکامل انسان های امروزی در آفریقا بوده حالا این تکامل از همون حدود یک میلیون سال پیش ادامه پیدا کرده سپس میان پنجاه تا صد هزار سال پیش اینا انسان‌های امروزی حالا شروع کردن پنجاه تا صد دا... هزار سال پیش. 50 تا 100 سال. پیش. 50 تا 100 سال پیش. شروع امروزی. کردن به خروج از آفریقا انسان های امروزی, امروزی. ببین انسان های رازخامت آمده بودن بیرون بله اما ما چون مب... اون چ... نظریه چند مبدعی خیلی پذیرفته نیست که اینا رفتن اونجای خودشون بنابراین انسانی که امروز ما میبینیم ژنتیک نشون داده که اینها تا حدود هزار سال پیش در آفریقا تکامل کامل پیدا کردند گذاشتن پاشونا گذشته بیرون که ماها فرزندان اونایی تمام اون انسانهای دیگه که تا اینجا اسم نامبردی منقرض شدن آخه که که بله. دو مورد که یک پوشش ژنتیکی اندکی داریم که یک ناندرتال ها هن. که شش درصد باشون پوجن دیگه داریم یعنی دیگه ماندرتال ها در لبه پردگاه نیستی بودن ظاهرا آمیزش های میان انسان حرتمن و وازمانده مانده ناندرتال ها انجام شده عمده ناندرتال ها نابود شدند و اون چیزی که مونده حاصل آموزش انسان های قالبه که کهخردم من نامیده می شدم با اونها بوده که 6 درصد بله پس تا اینجا رو داشته باشیم این قت 31 کو اینجا به تام پایان میرسه پیشرمون قال گرامی رو تا شروع قسمت 32 دوم به خلداوند مطالی ها خدای یا رو